ما و می و معشوق و سبوهی ساقی، از ما نبود تو به نسوهی ساقی، تا که خانی قصه ساقی، پیش آر سبوک راحت روحی ساقی. نسوی وسال تو مرا دست رسی، نتاقت حجران تو دارم نفسی، نزهره که باز گویم این غم کسی، مشکل کاری تو به غمی هنگام سبو هست و خروش ای ساقی، ما و می و کوی می فروش ای ساقی، چه جای صلاح هست خموش ای ساقی، ز حدیث و زود نوش ای ساقی. هنگام سبو ای سنم فرخ بی، برساز ترانه ای و پیشا و کپگند به خاک هزاران جم جمع کی این آمدن تیر و رفتن دی.